پس اولین اولین انسان از باور زردوشتی بیخرت ساخته شده در واقع در شاهنامه این های اولییه ایران گرفته شده بله وقتی طبق یز دانشناسی زردوشتی تغییر شکل داده شده و اون مفاهیم در این جای داده شده بس برای این خاطر که کیومرز، که تخم همه انسان ها دوست رو از دستمن آخر در زرد داشت دیگری اه، اه، مسئله اینه که تو ژیر زندگی رو از عجی تشخیص بدی. باید تشخیص بدی و این هم روشنه ام. یعنی جی زندگی میدونید چ اون که ز عجی اجها می‌دونی. در روشنه که در برابر چشمت است اون وقتی این اون رو دوست کسی که خرد داره این رو دوست میگیره برمی‌گزینه کسی که خرد نداره چیکار می‌کنه اجی رو بر برمی‌گزینه درست یعنی اهریمنو بعد بعد درست کیومرش هم این کارو می‌کنه کیومرش چیکار می‌کنه علاقه به مهر داره اما نمی‌دونه که دوست اهریمن دشمنشه وقتی درست مهر به کی می‌ورزه به اهریمن می‌ورزه که عجیف. در واقع تخم ها رو با این کار زشت کردن. یعنی تخم انسان‌ها که کیو مرس باشه از زشت نه ولی بیخرهت کرد. آره یعنی همون مثل قرآن جهولان ظلوما. درسته؟ جاهل و ظالمه. ظالم آخر معنی ظالم یعنی تاریکه. یعنی نمی نمی‌شناسه. آره. ولی در حق... همون مفهومه. طایرت سی... سیامک کاری که میکنه اینه که اه... سیامک بیداره،, بیداره. متوجه فرق آه. داره با این. متوجه این... این از داختان قدیم اومده. درست. این زرتشتی نیست چون که در چرا سیامک رو هضم نکردن آقا. ها نه. این علتش داره که این فرهنگ قدیمی چیمرگی در این داستان ها بوده, بوده. نتونستن حض کنند آره اینو نتونستن حض کنند اگر نه در اوندهش فرزند یعنی تخمی که از کیومرس میریزه مشی و مشیان هست. چیز نیست سیامک نیست این فرقشه این ببین دو تا فرق کاملا سببه این میشه که ما میتونیم تشخیص بدیم در کره اولیه در داستان های اولیه سیامک از این تخم اولیه رویده پیداش بده کرد در سواعتی که از دید از دانش شناسی زرداشتی مشی و مشیانه وقتی مشی و مشیانه درست همین ایده کیوومرس رو نشون میدن چرا اول در بندش ما میگه اولین گناهشون چی بود اول اندیشیدن این کار خوبشون بود. ولی چی چی اندیشیدن؟ اندیشیدن که اهورا مزدا همه چیز رو می‌اپرینه و اصل مدنیت هست. همه چیز رو آباد میکنه. اصل آبادیه. میگه هنوز این اندیشه تنونه شده بود که اندیشه وارونه اش اومد. آمد که اندیشه احریمانی اومد که نه دنیا را احور و مزدا فریده و اصل آباده نیست. اصل مدنیت نیست. میده این نخستین گناهشون بود. یعنی اشتباه کردن یعنی به جای اون احور و مزدا را اصل مدنیت بر نگذیدن. برک بر که اهریمن اصل چه درست همین مثل اینجا دوست. که یعنی دوستی با چی پیدا میکنن؟ با اهریمن پیدا میکنن و این سبب گناهشون میشه. با جد زندگی. باره. میخوام می‌خوام بگم می‌دونه اینا تو همون جا بلا فاصله داستان بعدیش میبینی داستان خرم نیست داستان سیمرغی است. اینا رو این برای تغییر این داستان‌های قدیم به داستان‌های برای زردشتیگری سبب می‌شد که بخشی از اون داستان قدیمی باقی می‌موند. یعنی در واقع اینا نقشی که به سیامک دادن در این داستان ها که به سیامک دادن در واقع یه نفره که خودشو فدا میکنه برای این آه که آه احریمن نابود کنه دا، دا دا دا این سیامک سیاک مک تو تکس ها این سیاک مک یعنی سه تا مک یعنی نی درسته مک سرمک نیه مک نیه سمک که با ماهی میگن یعنی سه تا نی ماهی اینه که ماهی سرخ توی زشن او به کار میبرن ماهی همینه. سرخ سیمرغ همین داستان سمک ایارم همینه آره داستان سمک ایار همینه ایار یعنی دوست, دوست. آره خدا دوست دیگه ایار سمک ایار ماهی و دوست و وقتی این سماک هم همینه میدونی؟ بله حالا این قضیه اینه که برای این خاطر که در نوروز ماهی سرخ تو آب میکنم چون که هم آب سیمرغ آوه آپ در هم ماهی, س... ماهی. تمام ماهیا سیمرغ در اینجا حالا این سیامک چیه ام. سیامک چه همیشه سروش با سیامک چرا و کار داره درسته یعنی در واقع سیامک سیمور اولین اولین پیوند رو اولین خبر یا اولین حقیقت رو خرد رو آخر سروش آورنده چیز بهمنه خب چیز خرد بهمن با... که اول برای س... کی میاره؟ برای سیامک میاره سیامک میاره بعد سیامک میاره آخر سیامک اولین بله بهمنه بهمنه آفرین سی مرغ اولین پیدایش, پیدایش بحمنی بحمن. که بعد پیدایش سیمرغ میشه سروش درسته آره بارو این قضیه اینه که این اینه که سیامک این خیلی مهمه خودش رو چون اینه که خدایی که قداست جان رو تضمین میکنه اینه که برای جان نگهداشتن جان کیومرث که در اینجا اولین شاه برای اولین انسانه خودش رو قربانی میکنه نمیگذاره جان آزار ببینه آفرین بعد... ولی بلا فاصله اینی که در چیز در سوقش تمام لباس فیروزه می چرا،, چرا سیامک به جنگ اهریمن میره بج... برای خاطر اینی که ج... اهریمن عجی دوز دو جا جان نجات دوست بخواد دوست بخواد... بده می اولین کارش اینی که میخواد آزار به جان برسونه درسته. با آزار میخواد به جان برسونه برای این خاطر چیکار میکنه؟ برای این چرا آ... چرا به بهنه میره؟ نه اون به آن برنه رفتن برای خاطر اینه که چیز خودعه به کار نمیبره آفرین خ... خ... برای خاطر اینکه چنگ بارونه نمیتونه بزنه چنگ بارونه نمیتونه بزنه خدا های راستیش، ارها رتب خدای راستی است که، در فرهنگ ایران از در همون داستان اول بر ضد خود و مکر خود و مکر چنگ وارونه زدن با اهریمنم در موارزه نباید کسی چنگ وارونه بزنه این کاری که اهریمن میکنه چون که اهریمن جلوتر چیکار کرده اهریمن جلوتر چیکار کرده خده کرده آ بارکره اهریمن چنگ وارونه خود... زده نه نه اهریمن خودش میخواد کینه‌ورزه ولی در قالب مه خودشون نشون میده به عنوان مه، مهربان خودشون رو نشون پس چیه؟ این چنگ وارونه اینو در اسلام ریا و نفاق و اینا میگن ولی این برای ایرانی درست چنگ وارونه زدن بعد چی میشه که بعد دوباره خود کیومرس، سروش به کیومرس هم میاد و برای اینکه میخواد به جنگ بره یه مدتی صبر میکنه این اینجاست یعنی این, برای... این... این قاچیمرز دوباره خودش تبدیل شده به سروش نه این، اینجا ببین آخر اینجا این دیا مرتان این اساسا به چیز نیست که اساسا اون فکر باز اینجا اون فکر اولییه برمیگرده یعنی فکر اولیه سیمرغیش برمیگرده برای خاطر اینی که تخم اصل روشناییه بله متوچی یعنی خودش به روشنایی میشه اینی که 3 مارس کیو مارس این تخمه برای پیدایش روشنایی یاد به 3 مارس داره بله و این در بخش دوم این داستان اثر ایده ای اولیه ای فرهنگ ایران که ایده ای ارتای سیمرغ باشه کیو مارس اون شکل اول پیدا میکنه امم و وقتی اینی که سروش, سروش خدای ضد جنگه یعنی زد بخاطر خشمه به خاطر همین مغلت میده میگه الان جنگ نکنه آن ب... برای این خاطره که نمیدونه نمیدونه با... با این با چی کار کرد یه کسی من را آذارده درسته من در مقابل این چی کار باید بکنم ب... برای همین وقت میخواد باید من آزار بدم درسته خب من وقت بخواهم آزار بدم اونم جان داره درسته. پس بنابراین این <تصفح> یه،, <تصفح> یه مسئله مهم اینجا آره، مطمئن میشه مس... مسئله اساسی ایران اینه که تا اون برای اون کسی که من را آزورده اونم انسانه ولی بد, بد میاندیشه در خشم میاندیشه اون وقتی ولی جانش غیر از اون خشم اندیششه اینه که من چیکار میکنم؟ من باعث چیکار بکنم باید به من در مقابل آزارنده آزارنده جان که جان خودش خودش جان داره من, من چیکار باید بکنم مس... یه مسئله است الان هم مسئله است من با خامنه با, چی بکنم؟ درست. من بعد... با... با باید چیکار بکنم من با هیتلر باید چیکار بکنم بعد از یه مدتی که سوگواری میکنه کیومرس دوباره سروش میاد که میدیگه دیگه بسته خب همین دیگه ای انا از این ب... وقتی که یک سال صبر کر... کرد درسته و وقتی میاد وقتی در این اسنا اتفاق دیگه میفته برای سوگواری سوگواری مسئله یه که اغلب اشتباه میپنونه چون که سوگ معنای خوشه گندم رو داره اون وقت خوشه گندم را وقتی که می کارن سبز می شه درسته بله. یعنی امید هست همیشه وقتی سیامک رو کشتن در سوگوارش وقتی هدف کنن امید هست به اینه که لباس فیروزه می یعنی می دونن پیروز خود شد یعنی از سر سبز خود شد. از سر خواهد روز زندگی از این ایده ای بوده که هیچ وقت زندگی رو نمیشه بین بود هیچ وقت سیمر رو نمیشه بین بوده. همیشه سیمر رستاخیز پیدا میکنه این ایده او وقتی که مهمتر اینه که در این در این موقع کل طبیعت در این شوق شراکت میکنه درست نه تنها کی بلکه کل طبیعت کل حیوانات کل اینها همه در این سوک حاضر میشن یعنی این د د د یعنی برای رفت آزار تمام جانها این شعر سعدی که, که یک به در تو به در درد یا قرار اره اینی که تمام, طب... تمام جانها اینجا مسئله جانان میاد اینجا اثر سیمرغ پیدا میشه سیمرغ جانانه تمام جانها برای این رفع این آزار چی میشن؟ بسیش میشن بسیش میشن آره ایده حالا بر میگرده یعنی در واقع موقعی که سروش به, به سراغ کیومرس در میا باقع سروش پیایند اینه آفرین در واقع سروش بلی سروش چی میگه؟ سروش میگه سرگانه دیگه بسته آنه حالا, نه. حالا تصمیم گرفته میشه اینجا با این مسئله تراج... تر... تراجیک که در مقابل جانی که من رو می آزاره بایا چی کار کرد؟ چی کار کرد؟ این او رو فکر میکنه نتیجه این فکر رو یک سروش حاله میاد میگه نتیجه فکر اینه که تو با آزارنده جان بارو مقابله کن درسته؟ ولی کین رو کین رو از خودت دور کن بیا بپرداز به شرط اینی که به شرط اینه که. دیگه بعد از این دیگه کشی نداشته. آره. اون وقتی اینجا بازش باز اثر زدش دیزه میشه. یعنی <تصفح> چی؟ یعنی اثر انتقام میاد. درسته. و این انتقام انز... انتقامگیری تو فرهنگ ایران نبوده. <تصفح> این مسئله اینه که چون که این اهریمان همیشه اونجا هست. درسته. در فرهنگ ایران این عجیب وجود نداره. درسته. جی خودش جفته <تصفح> اصل جفتی است. در اثر این جفتی این عراممت دوستیه علامت مهره. وقتی این اختشاشی پیدا کنه وقتی یک خورده دردسر پیدا کنه و وقتی تبدیل به خش میشه. تبدیل به عجی میشه. ولی این یه حالت ماقت و یه حالت یه آرضز. درسته. ولی اصل نیست اینکه که عجی اهریمنی موجودت متافیزیکی در طبیعت و اینها نداره درسته بلکه فقط اختلاله درسته. و اینه که باز اثر اینجا داستان داستان فرم زردشتی پیدا میکنه. این یعنی ایده زشی میشه اهریمن در واقع خاموش کن من خواسته شد خواهش میکنم. خب دوستان این گفتگو بخش اولش اینجا به پایان میرسه بخش دوم اون رو در آینده پیرامون شاهنامه ادامه خواهیم داد